تراوی که مودی هستند یک حدیث ضعیف چه حدیث ضعیف بیاورند که عامه حشکا تراوی خونده اون چیز داخل بخاری اومده فی رمضان و غیرهی آمده. رمضان و غیر رمضان حشکا خونده اون رو رم... در غیر رمضان تراوی هست بری بیارید چون می رمضان غیر رمضان هشتا خونده حدیث بیاری در رمضان تنها حشکا تراوی خونده بی تراوی خونده در غیر رمضان نه بعضین است در هم حدیث چهار چهار رکت اومده چهار رکعتی چرا حالی نحا دو رکعتی میخونه اونجا اومده در بخاری اومده فقط سه شب خوندن چرا 26 میخونی شما اونجا اومده که وی آخر شب میخوند چرا وی و ترابی تراوی می میخونی شما پس یک استدلال دارید میکنید که از اول تا آخرش مخالفه اینجوری نیست حالا دیگه این این طرفاندازی رفت از که خرافاتار میذاری 1400 چهار صد صد در امات عمل میکنه شرق تا غرب شمال تا جنوب کره زمین دارن بیست می از میخونه الا افرادی خدا اونها رو زده اونها از عبادت گرفته اونها که محروم شدن اما جهان داره میگه هر شما هم بگید دنیا رو اصلا تاریک هم بکنید حالا این نمیشه این طرفان علادی که داخل دنیا جایگاهی نداره روز روز الحمدلله مساده دو با در پرتر میشن خالی نمیشن دنیا داریم 20 رکل می خونن. یعنی صحاب کرام بدعت می ایمان تو که هیچ ارزشی نداری بیشتر صحابی شد اینها چی اندار اطراز میکنن کنند که اینجوری شده نه اینجوری نید همه دروغ دروغ محض اون حدیثی که در معطا اومده معطا اومده که حضرت عمر گفت یازده رکل می کنند اون حدیث مسترل هست استراب شدیدی داره سه حجت نیست 20 رکل صحاب و ثابی بیس ریکر خوندن خلافا بیس ریکر خوندن ائمه بیس ریکر خوندن جهان داری بیس ریکر خوندے حالا دیرو برایمان پیامی فرستادن که اگر جواب عاشق تا نداری خدا تو رو و قیامت جوابو باشی خوب این غزا برای اخرت ما اونجا حاضر میشیم همه حاضر میشیم حالا خدا کی رو میگیره کی رو خاص میکونجا معلوم میزه ما عاشقاں صحابه هستین صحابه راس الراس والعلمی گذاری هرگز بانه منو صحابه اشتباهی، هرگز اشتباهی نکردن. اجماع کرده این امت، این امت خاصیت این امت چی است؟ معصوم بودن. امت معصومه، افراد معصوم نیستن اما مجموعه معصومند. وقتی که یک امت بر یک مسئله اتفاق نظر کرد، یعنی این مسئله قطعا درسته. صحابه را اجماع کرده، همون حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی که که حشرکتو روایت کرده، در رمضان غیر رمضان روایت کرده. رمضان در رمضان و غیرهی در رمضان و غیر رمضان نبی کاری هشتگ ترابی کنده خون داخل مسجد نبی باز بوده و هشت دیسکاتو هم شاهده میکرد، اما هرگز اعتراض نکرد. نبودش ما بدعت میکردی. بی در حالی کوچکتری مسئله ای که اگر میشد فورا اعتراض میکردند، سابقه را همه تصدیق کرده همه قبول کردند. حالا شما دلیل اعتراض میکنید؟ حالا دیگه بری برو جای دیگه. بی پیش حیوانات بری بحث کنید پیش گوشفندی الاغی اونجا گونهای به انسانهای چیزار رو تحمیل نکونید تو انسانهای نارد نمیپذیرن فقط کارشون چی شده دور کردن امت از صلات فقط طرف همینه امت را از صحابه فاصله بده صحابه اشتباه کرده امت را از علما فاصله بده اونها اشتباه کردن همین بار بار گفتن که بدعت بدعت 23 بدعت امسال بیشتری حجم سوالایی که برای من میاد شاید همین چند روزی اومده شاید حالا چندین هزار سوال برای من اومده چندین هزار سوال چون روزانه در سوالا میان بیشترین سوالی که بیپورسه همینه که اگر نخوندیم چی میشه ایک سنته که نفله اول گفتن بیستکات نخونی حالا میگه هیچ اصلا نماز نخونی ترابی نخونید. از کجا اینا داری بے ثلقی نمیسن کی در القام تو اینا همون کسی که بیسرا به حشر بری از آلبانی پرسید که آلبانی میگه که ما از حشر کا که بالاتر الله پایینتر داریم ان یک رکات هم داری پس یک رکات میخواست نه خورنید چرا این همه قاغا روی عبادات زمان اومدن حمله کردن بر قرآن گفتن بوسیدن قرآن شرکی بوسیدن قرآن بدعته اینو گرفتن از مردم اسوال کسی علاقم تاذین قرآن نیست بعد گفتن که آقا در حالت حیض ناپاکی خانومها در نفاس که زایمان کرده در جنابت قرآن بخونه اشکال نداره میگن اون حدیثی که هم میگن ضعیفه در ادب را میگیرن ادب از قرآن گرفته شد ادب از احادیث گرفته شد ادب از تمام چیزها قرآن را هر مزوری معذوری بخونه خانمی که مزور قرآن بخونه جنوب قرآن میخونه بی وضو دست میزنه اشکال نداره از ازونها به هر روز اون اینها رو میفرستن که تیگو بیه اون حدیثی اونها میگن ضعیفه قائل راجه این است ما داریم میگیم از کجا این ها روز کردن کارخانی دارن و ماه درست که حالا بذارم بر مردم بفرستینها ادابم دارن انسانها میگینه توبه بکنید این اخلاقی خوبی نیست این غلطی هست اینها داری صحابه کلام متهم میکن روی اشتباه ونار دارن اشتباه کردن اگر از پیامبر بیستگاه ثابت نمی‌بود، هرگیس ثابیکران نمی هر نمی‌خوندند. کتابی در مدینه منابع نوشته شده که بیش از هزار سال در مسجد و نبی خونده شده. جلوشون بری بگی دارن بدعت میکنن. بی هی hey, حرامین، هی hey, حرامین میکنی شما کونها سلفیان ما انفین. حالا اونا در این بیستگاه می‌خونن. اونا حالا بدعتی حالا دیگه. این حداقل حدیث هم دارین بر دو تا حدیث یکی هم دارین که در مصنف ابن نبی شعب اومده ای در مصند گورگانی اومده بسرکت هم ثابته با وقت اومد حدیث ضعیف را تلاقی بالقبول بکنن خود به خود اون حدیث قوی قرار می